اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن به نام خداوند بخشنده بخشایشگر خداوند الرحمن علم القرآن قرآن را تعلیم فرمود خلق الانسان انسان را آفرید علمه البیان و به او بیان را آموخت الشمس و بحسبان خورشید و ماه با حساب منظمی میگردند و والشجر يسجدان و گیاه و درخت برای او سجد میکنند رفعها و رفعها و آسمان را برفراشت و میزان و قانون در آن گذاشت تا در میزان تقیان نکنید و از مسیر عدالت منحرف نشوید و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان و وزن را بر اساس عدل برپا دارید و میزان را کم نگذارید و زمین را برای خلایق آفرید فیها که در آن میوه ها و نخل های پرشکوفه است والحب ذو العصف و دانه العصف و که همراه با ساقه و برگی است که به صورت کاه در می آید و گیاهان خوشبو ربکما پس کدام این نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ شما ای گروه جن و انس. خلق الانسان من صلصال كالفخار انسان را از گل خشکیده ای همچون سفال آفرید و خلق الجن من من نار و جن را از های مختلط و متحرک آتش خلق کرد فبأي آلاء ربكما پروردگارتان را انکار میکنید؟ رب المشرقين و رب المغربين او پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است فبی آلاء ربكما تكذبان پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ دو دریای مختلف شور و شیرین گرم و سرد را در کنار هم قرار داد در حالی که با هم تماس دارند بغیان در میان آن دو برزخی است که یکی بر دیگری غلبه نمی‌کند. کندند این را بینکومدون پس کدامین قیت پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ کنید یا خرونجین همقل او دو؟ لؤلؤ و مرجان خارج می شود فبی ای آلائی ربکما تکذیبان پس کدام این نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید وله الجوار المنشآت فی البحر کل و برای اوست کشتی های ساخته شده که در دریا به حرکت در می آیند و هم کوهی هستند تکذبان پس کدام این نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید همه مَن که روی آن زمین هستند فانی میشوند ویبقا وجه ربك ذو الجلال و ال و تنها ذات ذل جلال و گرامی پروردگارت باقی میماند فبئي آلائ رابک مات كذبان. پس کدای من های پروردگارتان را انکار میکنید. یسالُهُم مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هو فِي شَأْنٍ تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند از او تقاضا میکنند و او هر روز در شأن و کاری است فبی ای آلاء ربکما تکذبان پس کدام نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید سنفرغ لكم الثقلان به زودی به حساب شما میپردازیم ای دو گروه انس و جن فبی ای آلائی ربی کما پس کدام نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفا لا تنفذون إلا بسلطان ای گروه جن و عنس اگر میتوانید از مرزهای آسمانها و زمین بگذرید پس بگذرید ولی هرگز نمیتوانید مگر با نیرویی فوق اللاده فریع عای ربکما پس کدامین نمت پروردگارتان را انکار می کنید یوسل من نار از آتش بیدود و دودهایی متراکم بر شما فرستاده می شود و نمی توانید از کسی یاری به طلبید فبی ایی آلائی پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید فا ایزا شقت السماء فکانت دران هنگام که آسمان شکافته شود و همچون روغن مذاب گلگون گردد حواضص هولناکی ناکی روخ می که تاب به تحمل آن را نخواهید داشت فبی ای آلائی ربی کما پس کدام این نعمت پروردگارتان را انکار می يسأل عن ذنبه انس ولا جان در آن روز هیچ کس از انس و جن از گناهش سوال نمیشود و همه چیز روشن است. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس کدامین پروردگارتان را این کار می کنید مجرمان از چهره هایشان شناخته می شوند و آنگاه آنها را از موهای پیش سر و پاهایشان میگیرند و به دو زخمی افکنند فبی ای آلائی ربکما پس کدام این های پروردگارتان را انکار میکنید کنید جهنم التی یکذیب بی المجرمون این همان دو است که مجرمان آن را انکار میکردند يطوفون بينها وبين حميم آن امروز در میان آن و آب سوزان در رفت و آمدند طبیع این پس های پروردگارتان را امکار می‌کنید. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جندن؟ و برای کسی که از مقام پروردگارش بترسد دو باغ بهشتی است. پس کدام این نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ آن دو باغ بهشتی دارای انواع نعمتها و درختان پرترابت است. سببی ع ای این را پس کدامین های پروردگارتان را انکار می کنید فییم در آنها دو چشمی همیشه جاری است. ع این پس کدامین های پروردگارتان را؟ انکار میکنید فی ما من کل فاكهه زوجان دو از هر میوه‌ای دو نوع وجود دارد هر یک از دیگری بهتر فبی ای الائ ربکما تکذبان پس کدامی نعمت های پروردگارتان را انکار میکنید متکین علی فرش بطائنها من استبرق و جنل دان این در حالی است که آنها بر فرشهایی تکیه کرده اند با آسترهایی از دیباب و ابریشم و میبه های رسیده آن باغ بهشتی در دسترس است. فبی ایی آلائی ربی پس کدامی نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟ فیهن قاصرات الطرف لم یطمیث هن لم یطمیث در آن باغ های بهشتی زنانی هستند که جز به همسران خود عشق نمی‌ورزند و هیچ انس و جن پیش از اینها با آنان تماس نگرفته است. پس کدام نعمت های پروردگارتان را انکار میکنید؟ آنها همچون یا قوتم مرجانند. فبئي آلای ربک ما پس نعمت های پرورگاری‌تان را انکار می‌کنید. جزاء الاحسان، اِلَ الاحسان. آیا جزای نیکی جز نیکیست؟ پس کدام رابیکومت و پس های پروردگارتان را انکار می کنید و میدونی و پایین تر از آنها دو باغ بهشتی دی دیگر است فبی عای رابیکومت و كذیبا؟ کدامین های پروردگارتان را انکار می کنید؟ مدهمتان هر دو خرم و سرسب زند فبی ایی آلائی ربکما تکذیبان پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ فیهی ما عینانی نباختان دو چشمه جوشنده است. فبی ای پس کدام نعمت های پروردگارتان را انکار میکنید؟ فیهما فاكهه و نخل و رمان میوه‌های فراوان و درخت خرما و انار است. فبی ای آلائی ربکما تکذیبان از کدام این نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید فیهن خیرات حسان و دران باغهای بهشتی زلانی نیکو خلق و زیبایند فبی ای آلائی ربکما تکذیبان پس کدامین نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ و نقصاتٌ حوریانی که در خیمه های بهشتی مستورند. فبأي آلاء ربك ما تكذبان پس کدامین نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ لم يطمث مثله انس قبلهم ولا جان هیچ و جن پیش از اینان با آنها تماس نگرفته فبی اي آلاء ربكما تكذبان پس کدام این نعمت های پروردگارتان را انکار میکنید متکین على رفرف خضر و عبقری حسان این در است که بهشتیان بر تختهایی تکیه زده اند که با بهترین و زیباترین پارچه های سب سنگ شده است فبی اینی آلائی ربکما کدام این نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید تبارک اسم ربک ذلجلال والاکرام پربرکت و زوال ناپذیر است نام پروردگار صاحب جلال و بزرگوار تو